بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و سلام بل محمد و علی و محمد و فرجم خب ما شما داشتیم مخارج حروف رو می مخارج حلقی رو یا هم و سه مخرج حلق رو خوانده بودیم درست در کجا رسیده بودیم؟ لسا. آ دار لسان درس. ما یک عکس لسان خواندیم دیگه را شما. آ لسانم عکس لسان رو خواندم و باقیشون مانده. خب پس حالا از همه چی مخارج لسان ادامه خواهیم داد ان شاء لسان رو خواندیم ما را. عکس لسان خریبات من حل. نزدیک به حلق هست و از تحت جمل هم حلق. آ درست جد. لسان قریب من الحلق خب از کاف را نخوندیم، درست؟ نه ادامه و دینویسین ویالی، ویالی مخرج کاف و یادیه مفرج و کاف عدد نزید کنید؟ نا دیگه چی اونجا سازم افصال عدد داریم؟ نا دیگه چی دو دو نیه یک باز نیوشت کردی یک پس نیوشت کن دو ویالیه مخرج القاف ویالیه نه ویالیه ویالیه یه یا ولدم است ویالیه و مخرج الکاف فهو فهو اقرب منه فهو اقرب منه نمیشتیم؟ اقرب منه قلیلا ایلا جهت الفم ایلا الفم ایلا الفم فم یا فم اه خب، شماره دوم ما، چی هست؟ مفراج کاف هست، دوباره یعنی این هم اقصال لسان هست، ها؟ در قسمت اقصال لسان بودن یکیست، در اقص... از اقصال لسان دو حرف بوجود میهند، حرف کاف و حرف کاف، درست شدید قسمت لسانه دیگه، این هم وسط لسان؟ خب، از ای افصل حرف قاف و کاف با وجود خب برای قافش هم افصل لسان گفته میشه برای کافش هم چی تفاوت هردو هر دو داره در مخرج قافش خب نوشته بودیم که قریبا من الحلق نزدیک حلق درست اما در چه در کاف نوشته کردیم که اقترب منه و قليلا الى جهه یعنی مخرج کاف نزدیک تر است. از مخرج کاف کمی به سمت دهان. مخرج کاف نزدیک تر است؟ آره. مخرج کاف یک کمه اگر نزدیک به دهان هست. یعنی ای به این تصویر نگاه کنین اینجا. مثلا اگر کاف از این قسمت ادا بشه، حق خوش است. یعنی حق آره؟ این هم ای لحوات است؟ یا این لحوات است. این کاف ای وسط و لسانه درست هست؟ حلق درسته درست این حلق خب اگر مثلا قف از اینجا عدا بشه کاف از قسمت عدا میشه درست؟ کاف نزدیک به دهان عدا میشه فم یعنی دهان خمیدهیم؟ آم یلیه مخرج کاف می یعنی بدون دنبالش میاید مخرج کاف فهوه پس این کاف اقره همینو نزدیکتر است از اون کاف قلیدم یک کمی در کجا نزدیکه الاجه ها دیم به سمت دهم فهم ما گفته بودیم که چه حرف کاف و کاف از اقصر نسان ادام میشن یعنی دورترین قسمت زبان. زبان درست؟ یعنی پایینش اینجا که از مربوط حلقه دیگه درست؟ از پایین ترین قسمت یعنی یا دورترین قسمت که اقصا هست حرف عمزه و خواهد ها هوا آزاد راحت میره درست؟ افهمیدهیم؟ امتصاده، حاق، اع ها اع خب هم تا هوا آرام را هست حرکت می کنه. درست بعد این هوا دقت کنید چی میگه این هوا اگر که از اینجا حرکت کنه منطقی در وسط حلق خواب اینجا یک کمی گیر کنه درست گیرفتگی با وجود بیاید این گیرفتگی حالت اه اه شدت مانند را هم به خودش بگیره تبدیل میشه به حرف حی هوا از پایین که حرکت کرد در وسط حلق رسید وقتی گرفته شد مشه ه اگر گرفته نشد آزاد رفت مشه ه فهمیدین اگر هوا آزاد رفت میشه ه اگر در وسط حلق کمی گرفته شد میشه ه صحیح شد بعد انمی ه اگر یک کم اگر ارتعاش یعنی احتزاز تکون پیدا کرد میشه رنگ درسته؟ عین و هر دوتاش یک چیز تفاوتش در اینه که حی، گرفتگی، فقط گرفتگی داره اما عاین کس حالت احتزاز عاين. تکان داره عاين. جنبیش، درستا؟ تمام؟ هم. هم. بعد همی هوا از پایین که آمد، خب؟ اینجا که حالت گرفتگی هم بهش پیدا میکنه حالت خراشدگی هم اگر به خودش گرفت میشه خواب درسته چون؟ خواه اینطوری عینش هم که ما کمه که رویشان حالت ارتعاش از بین بره میشه غین غین و خواه خیلی نزدیک شبیه هم ادا میشه ولی خیلی خراشی بگیشون زیادتر هست نسبت به غین پس قسمت تمام که قبلا خوانده بودیم نه؟ می رسیم امروز در لسان درست؟ در لسان که قسمت اول مخرج اول ما اقصال لسان قریب به حلق هم لسان قریب به حلق درسته؟ اقصال لسان قریب هم من الحلق همون تا نگشته ببین؟ یعنی کاف نزدیک به حلق درست؟ این دفعه کافش نزدیک به فم درست هم. آره. هر دوتایش از قسمت زبان ادا میشه دورترین قسمت زبان, زبان. ولی قاف نزدیک به حلق قاف نزدیک به؟ دهان. قاف. یا فنگ فهمیدیم؟ حالا بگین قاف قاف, قاف. ها. حالا بگین کف قاف. کف خوبه، ها؟ خوبه قاف و کاف خوبه، بد نیست فقط عین ها و عین دقت کنید. برای کلیه عجم های فارسی ح عینش ع... عدا کردنش یک مقدار سخته. باز ایرانی ها غین و قاف را به هم ریخته. ولی از موضوع افغانی ها خوب الحمدلله مشکل نیست. توجه شدین؟ ایرانی عمر رو میرم ها اونو ایرانی چه به هم درفتن. از ما شما فقط ببین آقایون نسبت به خانوم ها خوبه. راحت میتونه حیوان رو ادا کنه. ولی خانم ها چون آرام صحبت میکنن لذا باید روی خود فشار بیاره که عینو پیشه درسته؟ خید نمیشود خید نمیشود خید نمیشود خب, خب, خب دقت میکنی؟ خید نمیشود دقت میکنی وقتی خواستیم عین بگیم کافی حلق رو کم فشار بدیم یعنی حالت گرفتگی بگیم درست؟ اگر ارتعاش پیدا کرد، غین میشه اگر نکرد، حی میشه دیگه خلاص. غین غین درست شد؟ اصلاش؟ انتم، ها انزهتم آه، انتم ببین انتم عمزه دیگه، حمزه هست، درست شد، عمزه اما اگر بگیم که چه؟ غن صلاحه، عمزه آه، غن صلاحه هنده، غن صلاحه هنده درست خب ایره رو چون روز قبل خوانده باید زیاد تکرار میکردیم و تمرین میکردیم خواه؟ که بازم تمرین کنیم شاید فقط حالا کافم هم خوانده بودیم، خواهش امروز خوانده میده درست؟ ای هر دوتا رو انشاءالله که مشکل نداریم ما شما از زیاد خواه و کاف رو عدام میکردیم. حالا بریم ادامه بدیم همین لسان را پس در قسمت اقسل لسان دوتا حرف بود یکی نزدیک به حلق که چی بود؟ قاف. نزدیک به حلق قاف. قاف. و یکی هم نزدیک به فم که سعی شد؟ پس از قسمت اقسل لسان یعنی دورترین قسمت زبان خلاص شدیم درست؟ رسیم در وسط به لسان در وسط لسان سه حرف باوجود نهید خب؟ یعنی اینجا هست دیگه جیم و شین جی machine no. مخرج س و مشه دیگه وساپل نسان وساپل نسان چراش نه نه کنین که و من هو و من هو تخرج الجیم و و من هو تخرج الجیم و من تخرج الجیم نه، نه، و اینجا نویشتیم وَمِنْ هُو آخر داخل قاس الحروف الشجریه از شجریه یا آخری شمزان آره آره آره از شجریه شما شکریه از شجریه شموک شموک شموک خب نویشتیم؟ ببین و... خب وصل حلق قسمت دیگه شجریه خروف... خروف شجریه خروف شجریه خروف سعی کنیم چی بگیم این زبانه درست؟ ببین. وقتی می حرف جیم بگیم این وسط زبان به سمت حنک بالا یا کام بالا نزدیک میشه فامیدیم؟ جم چین یا در هر سه صورت اگر دقت کنیم فقط وسط زبان این قسمت زبان نه این قسمت زبان نه فقط وسط زبان خود اینطور حالت چی میگه ایران؟ کبیده کبیده چه؟ هر که میگم دیگه کو، آه کوب آره حالت کوب میگره با خواده خواده شد؟ جین. جین. جیم جیم جیم وقت جیم میگیم دقیقا وسط زبان بالا مارد درست؟ شین عینی چیست؟ یا عینی چیست؟ شد؟ خدارو در این فرصت هم انشالله که ما شما الحمدلله که زیاد مشکل ند داریم جیم اون دیگری زیاد تا ما خدمت جیم و خاطر مین لباب هم میاد اصل حرف جیم از وسط اضافه جنگ جنگ بوده زاد تمام شد پس <تصفيق> تصف روز دقت کنیم بچه ما شما کاف نزدیک به حلق خواندیم کاف نزدیک به فم از اقصال لسان خوندیم و ست لسانم که حروف شجری باشه خواندیم سعی کنیم یک، دو، سه، چار، پنج، شش شش تا از حروف <تصفيق> حلق <تصفيق> درست شد؟ دو تا دگم هم لسان چند تا شد؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سه تو ایدگی هم وسط چند؟ یازده تو یا 29 از 29 یا 28 و هشت یازده چند ممنم؟ یا اونها خب، تمام شد وسط هلسان؟ برد بیل چار معنیشی قچه ندار و امین بو یعنی و از وسط لسان خارج مشه جیم شیم یا خروف شماره چهارون المخرج الرابع المخرج الرابع؟ رابع؟ شماره چهارو میشه دیگه دیگر؟ سهوم وسط لسان بود نه؟ وحرال لسان زهرال لسان محرس چیداش خونشته که چهار را لسان آه چهار می بیستن ببینید این قسمت زهر و لسان هم همطوری که در اکثر لسان دو تا قریب بر فهم قریب بشه زهر و لسان هم همطوریست زهر و لسان اینطوری اگل زیرش بزنیم بعد ببیسیم که مع اصول تنایا مع اصول تنایا اصول تنایا وصول الثنايا العليا. معا اصول الثنايا العليا. آه،, اه و من و من و من at ta'u wa ta'u at ta'u wa ta'u at ta'u wa ta'u wa dal at ta'u at ta'u at ta'u تیو توی آجران تیو او و و وقتی ما ادا میکنیم فرم نمیشه کدام حرف میگیم میشه ات او و و نوشتم سعی اینجا قسمت دندان مانده دیگه آره آه اینجا لسان داری یعنی دندان هست درسته؟ خیلی کنیم این اینو دندان پیش خب؟ دندان ها البته اتا آنوز باید اول دندان ها رو میخونده خیره انشاءالله سبا میخونیم خوام؟ خب؟ یعنی دندان پیش رو به سنایه میگن اونخوز که بلده زبان چه کار میشه خب؟ گفته <صدقا> <متحدث> که از حرف لسان مع اصول ثناي اصول جمع اصل اصل به معنی بیخ ریشه صحیح شد یعنی که خودی ثناياب باشه به یا ریشهش کجاست؟ بهش اینجاست یه شد اصول جمع اصل اصل به معنی بیخ و ریشه صحیح شد اصول, اصول دین یعنی بیخ دین صحیح آره اینجا این زبان کجاست این زبان خو ما در قسمت زبان دو چیز داریم که خیلی نزدیک به همه یک راس اللسان داریم یک زهر دقت می‌کنید راس اللسان دقیقاً نوک نوک؟ خب دقیقاً نوک نوک زهر و لسان بالاتر از نوک زبان زهر و رسال بالاتر از نوکه زهر به مانی پوشت زهر به مانی پوشت پوشت سر پوشت سر پوشت سعی کنیم انجا ما یک زبان بکشیم رسم... ببین این قسمت چی یعنی؟ این رو بهش میگم نوک یا نوک یا در عربی می نیستیم رس این قسمتش، این قسمت یعنی قسمت زهر هست یعنی قسمت ها که از یعنی قسمت زبان که و سب هست این نوکی نوک رأس هست نوک لازم نوک چی ها؟ آن انجا میبیند بگردی خیلی خشنگ گیرد بقیه هم انشاءالله چون داشته باشیم. خب سعی چی میگیم؟ گفتن که مخرج چارم زهر و لسان هم تا ساده دیگه ها؟ خب این زهر و لسان یعنی دقیقا این قسمت زبان چه کار مع اصول با بیخ دندان های بالا نپاییم یعنی زبان خب؟ خوششت زبان بقید میکنید این نوکش باشه این قسمت اگه زهر شده دیگه این زهر ببین با خود دندان حسابت نمی کنه بلکه این زهر بیایه با این گشت یا لسه حسابت کنه بر... نوک زبان با خود دندان نمی بلکه زهر زبان با, با لسه و طبیر دیگه با بیخ زندان صناعی بالا فامیدیم همگی اگه فاان بدیم؟ بله پوشت زبان ها با بخ سنایای بالا با بالا بالا آه كويس زبان ب به صنایای بالا خب سعی کنی چی میگیم خب یک دفعه بگین بگین تا وقتی تا میگین دقت کنیم که نوک زبان شب یا نه بالاتر از نو بالاتر از نو داخل دندون هم نمیخوره نه بلکه داخل یک دفعه بگین تا آ بعد اینال پا میگیم خب قا دال درست؟ درست؟ یک بکنم آن از تش یک بکنم آن از سیر شبیر یک بکنم آن از یک جای سبکیم که حالا تفاوتا رو اشاره توی دکیقا یک جایه گفتیم کل زهره لسان با اصول صنایه اولیا میشه درسته؟ ولی چطور میشه که یک دفعه ت میشه یک دفعه دال میشه یک دفعه دیگه ط میشه در حرف تویی که هست خود کل حلق حالت دیگه به خودش میگره حرف تا بلند تراشی داره به ترتیب تفخیم میشه پر ادم میشه همین که خواستیم پور ادا کنیم تی مو میشه تبدیل به پا، ولی اگر پور ادا نکردیم، پای ما میشه ته فهمیدی؟ ت نازک به تبدیل پا پور یا تا میشه. توجه شوی؟ متوجه شدی متوجه آنها؟ تی چی رو خمدا میشه؟ نازو کدام میشن خود؟ اینو هم تی که میکیم تی میشده اما اگر گفتیم پا این کل دهان که هست حالت پور بخود پور از هوا میشه. پور؟ پور آره فامیده؟ فامیده یا نه؟ خواه، خواه، سعی کنید چی میکیم؟ از مشکلات کل فارس زبان ها بگیم شاید و حتی یکل که موشم همطوره هستید اینمیه که دائم تایش ت میشه برست چرا؟ تاهیر میگه... طاهر میگه تاهیر آره بخاطر که اینجا تفخیم نمونیم ویلا تی و و دال هست هسته از یک جای ادا میشه دال قشنگ میگیم تیر قشنگ میگم چرا؟ نمیم. چون که همتا ساده سبوک ادا می اما توی فقط چی تفاوتی دارد؟ تفاوتش همون استعلاق بودن. البته اطباق هم است که حالا او رو بردر میکنیم. یعنی می که به توی بدیم میشه قا و ایلا نموشه. میشه تیر. برای پس بگم؟ قا. قا. قا. قا. قا. کم کم میشه این شد خواه سه شد شو. ها؟ میشه این تمام شد؟ پس زهر و لسان قسمت اولش چند تا حرف شد؟ سه ته و پاه و دال خب اینال قسمت دومش خب؟ قسمت دومم بخواهیم شاید امروز بس باشه یا نه؟ بس خب؟ بس تمام بگه؟ ها؟ قسمت دوم، این رأس و زهر و وسط خفامیدیم نه؟ بختم نه ها رأس کتانوز مرم یاد بلان خیر، انا گفتم خفامیدیم نه؟ ها سرس مهم خودشیه خودش خفامیدیم دیگه مخرجو چندون میشه؟ آره پنجم دوباره ایره چار پنجو کنیم زهر و لسان مطال من که گفتیم خط میزنیم نوشته مینیم بعدش زهر یک خاتم میزنیم یک خاتم بعدش میشن که مع مرا رؤوس مرا رؤوس ثنايا ثنايا القليا <مع>, <مع>, مع رؤوس سنایا العليا و من تخرج و من تخرج و من تخرج و تخرج و الطاء والطاء والباء والدال والدال الطاء والباء والدال الطاء و این طوره راحت راحت استید خب نویشتی میرم؟ بله سعی کنین پشت زبان اما زهر لسان یعنی با سر دندان صنایا اصابت میکنه. دقت کردی؟ نوک زبان نه زهر زهر لسان با نوک دندان سانه اگر این زهر لسان با لسه اصابت کرد میشه تو و تاو دال اگر همه زهر لسان با نوک دندان صحبت کرد میشه تو و باو دال صحیح شد؟ همی بمی راحتی فقط تفاوتی که این پروف داره چیه؟ باز بعدا آهست آهستان میخواید یعنی زوی که هست دقیقا زقمی که قاب پرخانده میشود اینم پرخانده میشه اگر پر نخوانیم مشه زاد نوک زبان را نه اما پشت سر نوک. در سر دندانی بالا بچسبانین موشه فه خب. آخه خب. آخه <باوز> فا و زال ترقیق خدا میشه باز ترقیق ببین سعی کنی چی میگن؟ بگین فه سه سه نگین خواه با میشه <باوز> بالا به شکل حسلشان میگیم نه سا. سایی کنید چی میگیم؟ دقیقا پشت اما این قسمت زبان را نو کشفه نه این قسمت زبان را به سر دندان بچسبانیم میشه سا سا سا آه، کم کم خوب شد سا سا شد نه؟ ده. خوب شد کم بگیم هم دفعه زویه میگیم خواه؟ زویه که خواستیم بگیم دقیقا هم قسمت زبان در هم دندان میچسبانیم مونتا خود دهان پور از هوا میشه وا وا وا میشه نمیشه آا آه نمیشه آه میشه. دیگه میات دیگه وا درسته این دفعه کار منیم دقیقا همو کار رو انجام میدیم مونتا هوا پُر از چی؟ دهان پور از هوا نشود ذل ذل ذل, ذل. ذل. زال نه خو کې ز ش رقم ببین تفاوط و سه سی. و سین اینجا هم تفاوتی ز و زال ونمو تر ځل ځل ل ل ل زال نه خو ی کم دره تفاوت داره خب پس دقت میکنین چی میگیم؟ کم کم شد الحمدلله سه شد زویم شد زال چه هم انشالله که بیشه سعی کنیم که نشود. زال ما تبدیل به زه نشود. فهمیدی؟ زال ما تبدیل به زه؟ انشالله خب پس حالا بگین شش تا چی شد؟ شش تا چه شد؟ هر آخسال چند شد؟ آخسال. فبوساتو لیسان؟ زهر چه لسان؟ چهارده. چهارده می شد؟ سه ده از زهر لیسان. یازده بود؟ یازده. یازده. شد چند تایی دیگه مانده؟ دوازه دانه دیگه مونده دوازه مانده؟ خب این شاگه دیگه دوازه تایی چی بخونه شد؟ دیگه روز بشتره خود بسند و سسته چند دوازه طرف؟ پس خوب دقت کنید چی میگم یک بار که باریم به طرف نهایی حروف حلقی رو خوب واضح شد نه؟ اگر هوا، سون این عقس به چه نقاشه دقت کنید اگر هوا راحت رفت خارج شد میشه ا و ها ولی اگر این هوا حرکت کرد در وسط حلق گیر کرد میشه خیل اگر تکان داد میشه غیم بعد اگر همینطور آمد خراشدگی هم به گرفت زیاد بود میشه کم کمتر بود میشه غیم فامیدیم؟ این تا این قسمتش واضحه قاف هم به حلق قاف هم که نزدیک به دهان این ساده جی موشین و یا هم که واضح هم که زیاد مشکل نیست فقط با کمی من زهر و لسان با سن با سنویا چی با لسان زهر و لسان با سنویا زهر و لسان با لسه اگر شد میشه تی و تاو و دال اگر با چی شد سنویا اینه دندان شد میشه چی چی فی و احسن و یا تاو و و دال با این تفاوت که حرف ق و حرف وا هر دوتایشان دهن پر از هواست. اما در بقیه حرف دهن پر از هوا نیست. تفخیم شده نیست. خامده یا نه؟ بله. انشالله. خب جلسه تجوید را همینجا به پایان میبریم. چند دقیقی که جلسه بعدی هست رو قرآن میخوانیم قرآن میخوانیم نه که چی بخوانیم اما سوره هایی که قرار بود حفظ کنیم چه کنیم وارا میخوانیم از حفظ نه از خود قرآن بخوانیم منطق با توجه به این کلمه حروف رو باید ادا کنیم گونه که هست سیع شد و الله علی سیدنا و محمد و علی حقه.